فارسی شیرین است کتاب دوم درس اول خاندن فوتبال فوتبال ورزش مورد علاقه بسیاری از جوانان است در کودکی معمولا بیشتر پسرها به این ورزش علاقه نشان می‌دهند. فوتبال هم یک تفریح و بازی است و هم یک ورزش فوتبال یک بازی گروهی است و این در ساختن شخصیت اجتماعی کودکان مؤثر است در ایران تقریباً 90 درصد پسرها وقتی از مدرسه برمیگردند در کوچه و خیابان‌های کم‌رفت و آمد به طور گروهی فوتبال بازی می‌کنند. به این گونه فوتبال در ایران گلکوچک می‌گویند که بسیار پرطرفدار است. امروزه ورزش صرفاً یک تفریح نیست، بلکه یک علم است. رشته‌های ورزشی مختلف در دانشگاه‌های سراسر دنیا تدریس می‌شوند و نیز هر ساله کتب ورزشی بسیاری چاپ می‌شوند. به علاوه علم ورزش در ارتباط با علوم دیگر بررسی می شود علومی مانند آناتومی، پزشکی، تغذیه، فیزیولوژی، روانشناسی و جامعه شناسی کنفرانس های مختلفی برای فوتبال برگزار می شوند که موضوعات متعددی را دربر می گیرند از قبیل 1. تحلیل مسابقه دو، مدیریت تیم 3. خشونت در فوتبال چهار، استرس پیش از مسابقه 5 تصمیم گیری داوران 6 تمرین های فوتبال 7 آسیب دیدگی بازیکنان فارسی عامیانه کتابی جلال آل احمد تجهیز ملت جلال آل احمد تولد 1923 وفات 1969 در خانواده مذهبی در تهران متولد شد وی تحصیلات خود را در رشته ادبیات فارسی در دانشگاه تهران به پایان رسانید و اولین مجموعه داستان‌های خود را با عنوان دید و بازدید در سال 1946 منتشر کرد آل احمد در سال 1950 با سیمین دانشور نویسنده به نام ایرانی ازدواج کرد بسیاری از آثار آل احمد، چه رمان‌ها و چه داستانهای کوتاهش به زبان انگلیسی ترجمه شده است. از جمله مدیر مدرسه که یکی از معروفترین داستانهای اوست. اما شناخته شده ترین اثر آل را باید قربزدگی دانست که در آن به انتقاد از تأثیرات منفی قرب در فرهنگ و جامعه ایرانی پرداخته است. دلاک حمام زنی بود عاقل و جهان دیده. گیس فلفلنمکش رو هرگز هننا نبسته بود و نمیخواست از آنچه هست جوانتر بنماید. نماید. گرچه مثل همه دلاک ها روده دراز بود هیچ وقت از کسی بدگویی نمیکرد. با هر هرکس که مینشست سر دل خود را باز میکرد و از جوانی خود از شوهر اول خود از بچه هایش که اکنون مردی شده بودند و برای آنها خیال عروسی کردن داشت صحبت میکرد. و هم از این و آن سراغ دختر می و با بعضی هم قرار و مدار میگذاشت که فلان روز با هم به خاستگاری بروند. مهرنگیز خانم یک بار دیگر را که سر بینه حمام برای همه منبر رفته بود اینجا خصوصی برای دلاک عاقل زن حمام گفت دلاک در حالی که کیسه را با تعنی، روی گوشتهای شل بازوی مهرنگیز خانم بالا و پایین می برد. پس از اینکه گفته‌های او را شنید گفت خانم من هرچه باشم پیرم و رفتنی از دنیام زیاد توقعی ندارم تا از کسی ترسی داشته باشم واسه یک کارمم سر و دست نمی شکنم. پسرام ماشالا ماشالا مثل شاخه چنار همیشه حاضرند یک لقم نونم رو برسونند اینم که میام دلکی مال اینه که خودم بی غیرت نیستم آقای خودمم و نوکر خودم اگه حرف من قابلیت شما رو نداره اما هرچه باشه گیسم سفید شده و میتونم دو سه کلام پیرانه به شما بگم ایران را بهتر بشناسیم خط نمای داخلی مسجد شیخ لطف الله در اصفهان بسیاری از مساجد ایران از جمله جاذبه های توریستی به شما می آیند بیشتر این مساجد به آیات قرآنی به زبان عربی مزین شدند زبان فارسی سی و دو حرف دارد که همان الفبای عربی است به علاوه چار حرف P, چه گاف بیش از هزار سال است که زبان فارسی با الفبای عربی نوشته می شود خوشنویسی با قلم درشت و مرکب یکی از هنرهای ایرانی است شیوه های مختلف خط در خوشنویسی به کار میرود که بعضی از آنها مختص زبان فارسی است مانند نستعلیق معمولا در خوشنویسی ایرانی اشعار فارسی را برای خطاطی انتخاب می کنند و آنها را با حاشیه گل و مرغ و تذهیب می آرایند